چو آفتاب می از مشتق پیاله براید زباغ آرز ساغی هزار لاله براید نسیم در سر گل بشکند کلاله سنبل چو از میان چمن بویان کلاله براید حکایت شب هجرا نه آن حکایت حالی است که شمیز بیانش به صدر ساله براید زگرد خان نگون فلک تمع نتبان داشت که بی ملالت صدق و سییک نوال براید زگرد خان نگون فلک تمع نتبان داشت که بی ملالت صدق و نوال براید به سعی خود نتوان برد پیوه گوهر مخصوب خیال باشد که کار بی حواله براید گرد چون نوح نبی صبر هست در غم طوفان بلا بگردد و کام هزار ساله براید نصیم زلف تو چون بگذرد به طربت آفز زخاک کال بدش صد هزار لال براید